الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و به و عليه و بالله من شرور انفسنا و من سیعات اعمالنا و الله لا اله الا الله وحده لا شريك له و نصلي و نسلم حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير نعمته و نذير نقمته سيدنا و حبيب حبيبه الاهي العالمين ابو محمد على ال اهل الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداه المهديين ولعن دوام على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين عباد الله وسيكم ونفسي بتقوى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمام تقوى انت تتعلم ما جهلت وتعمل ما علمت بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم وجود مقدس رسول گرامی اسلام در این سخن تعبیر بسیار جالب و مهمی می دارند میفرمایند که تمام تقوا و کمال تقوا به این است که اون چرا نمیدانی بیاموزی و ان چرا که آموخته ای و دانسته ای به اون عمل کنی و پایبند باشی حقیقت مطلب هم این است که ما نسبت به وظایف دینیمون در گام نخست باید با وظایفمون و تکالیف دینیمون آشنا شویم بدانیم وظیفه ما چیست در گام اول و در گام دوم پس از آشنایی با وظیفه و تکلیف عمل کنیم به اونچه خدای متعال از ما خواسته و دستور داده است و به تعبیر روشنتر نسبت به بایدها و نبایدها پایبند باشیم آنچه را او از ما خواسته عمل کنیم و آنچه را که خواسته پرهیز کنیم هیز نماییم سخن ما در خطبه اول پیرامون فریزه مهم و حیاتی امر به معروف و نهی از منکر بود تا کنون به سرفصلهای متعددی در رابطه با این فریزه پرداختهایم ایم و اشاره کرده ایم، یکی از سرفصلهای مهم در رابطه با مسئله، امر به معروف و نهی از منکر شناخت مسادیق معروف و منکر و تشخیص و تعیین های معروف و منکر است کجا اولویت دارد ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم زیرا گستره معروف و منکر متعدد و فراوان است همه حوزه ها را تقریبا شامل می شود حوزه اعتقادی دارد حوزه اخلاقی دارد حوزه سیاسی دارد حوزه اجتماعی دارد حوزه فرهنگی دارد حوزه اقتصادی دارد مجموعه این حوزه ها حوزه‌ای است که در رابطه با تک تک آنها می شود امر به معروف و نهی از منکر کرد منطقه ما به نکته اشاره کردیم گفتیم به جای این که فهرست بالا بلندی از مصادیق معروف و منکر را مطرح کنیم برای اینکه یک تفاهم کلی و وجود بیاد و دسترسی به معروفها و منکرها آسان تر شود ما میارهای معروف و منکر را در جامعه بیان کنیم اساسا با چه میارهایی، با چه ملاکهایی میتوان گفت اینجا معروف است و آنجا منکر این میارها به عنوان یک قاعده، به عنوان یک ذابطه میتوانند ما را به عنوان یک نورتکن جهت را به ما نشان بدهند و از برداشتهای نادرست دور نگه بدارند تا کنون به چند میار اشاره کردیم میارهای رسیدن به معروف و منکر میار اول این بود که هرچه ما را در مسیر حرکت الهی قرار می دهد می شود معروف از آن یاد کرد هرچه ما را از مسیر حرکت الهی دور می کند به عنوان منکر هست هر آنچه به عنوان تعاون بربر بر و تقواب و احسان و خیر در جامعه هست این عنوان است برای معروف هرچه به عنوان تعاون بر ظلم و ستم و بیداد در جامعه هست است برای شناخت منکر و بلاخره ثومین معیاری که مطرح کردیم به امروز باید ادامه بدیم در رابطه با این معیار این نکته بود که هر چه موجب تقویت بنیه دین الهی است پایه های دین الهی را استوار می کند تحکیم می بخشد. این به عنوان معیار جالبی است و به مناسبی است برای اینکه که در زیل اون و در زیر چتر آن قرار می گیرد به عنوان معروف شناخته شود و هرچه مایه تضعیف دین سستی پایه های دین در یک جامعه دینی و است این به عنوان است برای شناخت منکر و از مصادیق منکر شناخته می شود تقویت بنیه دین راه های مختلفی دارد ما به یک راه اشاره کرده ایم و اون راه عوارت از این است که فهم عمیق و ژرف در رابطه با دین اگر میخواهیم دچار سطحی نگری نشویم، اگر میخواهیم در مقابل شبهات خود را نبازیم و تحت تأثیر شبهات قرار نگیریم یکی از راهکارهای آن عبارت از این است که بنیه دینیمون را از جهت فهم عمیق دین تقویت کنیم همین روایتی که در آغاز سخن به آن اشاره کردم روایت جالبی بود بنوان تقوا مطرح کرده بود انت تتعلم ما جهلت اونچرا که نمیدانی یاد بگیری از دین فهم عمیق پیدا کنی این میتواند کمک کند در جهت تقویت بنیه دین اگر تک تک اهاد جامعه ما در هر شهری در هر کوی و برزنی که زندگی میکنن با معارف دینی آشنا شوند این خودش یک معروف توی جامعه اسلامی ما به جامعه دینی ماست دومین گام رشد اقلی در یک جامعه هست رشد اقلی افراد و به طبع اون رشد اقلی جامعی که ما زندگی زندگی کنیم، ما نباید پرهیست کنیم از اینکه جامعه رشد اقلی پیدا کند، هرچه جامعه به رشد بیشتر، به فهم بیشتر، به اقلانیت بیشتر برسد، چون این جامعه قطعاً و طبعا چون این جامعه نسبت به تغییر بنیه دین میتواند نقشافرین باشد، این مسئله مسئله مهمی است، مسئله ساسیس، دلیل آن هم روشنه. چرا ما را راجع به مسئله اقلانیت تاکید میکنیم چرا راجع به رشد اقلی در جامعه تاکید میکنیم نمیگیم رشد اقلی تو جامعه موجب تقلیت بنیه دینی جامعه است، به خاطر این که دین بر اساس اقل و منطق استواره حیغمبران الهی، اولیاء الهی مطرح کردن که دو حجت دارید شما یک حجت به عنوان عقل و حجت دیگر به عنوان شر و شریعت مقدسه اسلامی بر اساس دعوت عقل و نگاه عقل یعنی توحید ما، نبوت ما و مسائل دیگر ما بر پایه مسئله عقل استواره عقل میگوید چنین و عقل میگوید چنان و در تعبیر امیر مؤمنان علی علیه و السلام میفرماید الا قدر العقل یکون تعبیر جالبی است دین افراد به اندازه عقل آنان است هر چه عقل تو جامعه رشد کند فکر تو جامعه رشد کند این دینی که افراد پذیرفتن این دین استوارتر در جامعه باقی میماند اینم راه دوم برای تقویت بنیه دین که عوارت از رشد عقل و فکر در جامعه یعنی به جامعه ما قدرت تحلیل بدهیم تا جامعه اون چرا که میفذیرت با تمام وجود بفذیرت و هر روز دست خوش تغییر و تبدیل در فکر و عقیدهش نگردد مسئله سومی که مهم در جهت تقبیت بنیه دین تلاش برای حاکمیت دین است اینکه من به صورت فردی دیندار باشم یا نباشم یک مسئله است اینکه دین در جامعه حاکمیت پیدا کند مسئله دیگری است برای تقویت بنیه دین باید تلاش کرد برای حاکمیت دین حاکمیت ارزش‌های الهی در جامعه اگر ما توانستیم این مسئله را در جامعه پیاده کنیم این دین الهی رشد می کند و تقلیت پیدا می کند برای حاکمیت دین یکی مسئله برقراری حکومت اسلامی است نظامی قانونی برنامه عنوان حکومت اسلامی در یک جامعه به وجود بیاد اینکه امام راهل ما یک عمر فریاد کشیدن تا حکومت اسلامی در جامعه به وجود بیاد. دقدقه امام تخلیت بنیه دین در جامعه بود اگر حاکمیت دینی حکومت اسلامی در جامعه باشد دین صاحب پیدا می کند هر کس نمی تواند به نام دین سخن بگوید حساب و کتاب دارد برنامه دارد و مسئله دوم بعد از مسئله برقراری حکومت اسلامی یاری کردن دین است هر کدام از ما تلاش کنیم دین الهی را یاری کنیم هر کمکی که از ما ساخته است هر قدمی که می برداریم در جهت یاری کردن دین در این جهت کوتاهی نکنیم و مسئله سوم در رابطه با حاکمیت دین تبلیغ معارف دین هست تبیین معارف دین و مراقبت همه جانبه نسبت به دین شبهات وارد نشود اگر وارد شد پاسخ داده شود خب اینا اگر توی جامعه اسلامی ما مطرح شد ما میگیم اینا این معروفه تو جامعه ما معروف را کجا میخویم جستجو کنیم حاکمیت اسلامی معروف است برقراری حکومت اسلامی معروف است یاری کردن دین خدا بنوان یک معروف است تبلیغ معارف دین بنوان یک معروف است شبه زدائی از یک جامعه به عنوان یک معروف است مراقبت همه جانبه برای حفظ دین الهی به عنوان یک معروف است اینا معروف است که تو جامعه بنابراین ما نباید امر به معروف نهی از منکر را در بعضی از مسائل خلاصه کنیم. عرض کردم گستره امر به معروف و از منکر حوزه های مختلفی را اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و همه مسائل را شامل می کلامی از وجود مقدس امیر دیدم خیلی جالبه پاسداران دین را حضرت بیان می کند اینا چیا هستند؟ کسانی که تقویت کنندگان بنیه دینم کیا هستند میفرماید انما المستحفظون لدین الله پاسداران دین خدا تقویت کنندگان بنیه دین خدا الذ هم الذين اقاموا الدين کسانی هستند که روح دین در یک جامعه پافشاری میکنند دو و نسروح و یاری کنندگان دین خدا در یه جامعه اسلامی هستند. پای کار میستن سینه را جلو میاندازن برای یاری دین خدا و نکته آخر و حاتوهو من جوانبه یعنی از جوانب مختلف مراقبت میکنن از دین خدا با تمام وجود دین خدا را حفظ میکنن و نگه میدارن چون این ای مسلم درش معروف اتفاق میفتد و منکر زمینه جولان و تاختتاز ندارد ان الله یعمرو بالعدل والإحسان و ایتائز القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغ يعظكم لعلكم تذكرون پروردگارا جامعه ما را جامعه دیندار قرار بده فروردگارا امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه دینی ما به عنوان یک وظیفه برای امت اسلامی من مقرر فرما در فرج مولای تعجیل فرما توطئه دشمنان را به خودشون برگردان به امام راحلمون روح و رزوان عنایت فرما بر رهبر عزیز انقلاب من عزت سلامت طول عمر با برکت و فرما به مراجع بزرگوار تقلیدمون طول عمر سلامت عنایت فرما پروردگار را به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و اش کرامت فرما به رزمندگان پیروزی به جانبازان سلامت به آزادگان عزت به عالمان توفیق عمل به خدمات کشور توفیق خدمت به بانوان عفت به جوانان غیرت دینی انایت فرما پروردگار را باران رحمتت را شامل حال من بگردان ان احسن الحدیث و ابلغ كتاب کتاب الله العزیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله و احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا فاطمة الشعيل لنا في الجنة فإن لك إن الله شامنا من الشام أوزب الله من الشيطان الرجيم سمع الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين با الخلائق الخلاين ك اجمعين با وسيل انبیائ و و رسوله وحبيبه سيدنا و مولانا القاسم محمد <تصفيق> علي آله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وعلى علي ابن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى ابن جعفر الكابم وعلى علي ابن موسى الرضا المرتزى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الحادي وعلى الحسن ابن علي الذكی العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي خججك على عبادك و في كفي بلادك بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الى يوم القيامة عباد الله وسيكم و نفسی بتقوى الله ان و ومقتدانا الامام المجتبى عليه الصلاة و السلام قال التقوى باب كل توبة. و رأس كل حکمت و شرف كل عمل به فاز من فاز من المتقین بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم وجود مقدس امام مشتبه علیه السلام میفرمایند تقوا و پرهیزکاری سرآغاز هر توبه و بازگشتی به سوی خداست آدمای متقی حالت بازگشت به سوی خدا دارند راهشون راه الهی است و هر حکمتی در پرتو آن یعنی تقوا به دست نیایدت شرف بزرگ هر عملی است که انسان آن را انجام می دهد و پیروزی و کامیابی که نصیب متقین شده از رهگذر گذر است که از آن برخوردارند در خدبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی چند اشاره می اولین اولی امروز به عنوان روز شهادت امام مجتبا مطرح است وجود مقدس امام مجتبا علیه و السلام و سلام دومین امام و پیشوای ماست مورد محبت و علاقه رسول گرامی اسلام است تعبیری رسول اکرم درباره امام مرتضیه دارد تعبیر جالبی است حسن مننی حسن از من است بعد اشاره می کند و ان من من هم از حسنم احب الله من احبه کسی که حسنم را دوست دارد خدا او را دوست میدارد این است از ناحیه رسول اکرم در رابطه با زیارت اون حضرت تعبیری رسول نازنین اسلام دارد خطاب به امام مشتبه می فرماید من اتا که بعد موتک فله الجنه کسی که بعد از رحلت تو به زیارت تو به خطابت بهش نصیب او خواهد شد اینها تعبیرات بلندی است که رسول گرامی اسلام دارد در یک جا تعبیری دارد که تعبیر نبی گرامی اسلام دارد و اون راجب عظمت امام و مشتبه علیه و السلام است و شخصیت امام و مشتبه علیه و السلام است نمیخوام وارد اون بحث بشم بحثی طویل و زیل است عمر اون بزرگوار حدود 48 سال یعنی در سن تقریبا 48 سالگی به شهادت رسیده است از نظر اخلاق در اوجن همه امامان ما امام مشتبه از ذر اخلاق از ذر عبادت از ذر پارسایی در اوجست الهی زیفو که ببابک یا محسن و قد اتاک المسی و انت المحسن فتجاب از انقبیه ما اندی بجمیل ما اندکه یا گریم در مسجد که میاد این گونه با خدا سخن میگوید الهی زیفو که ببابک مهمان تو در خانه توست این شکلی ورود خروجش نسبت به مسجد این است. مسئولیت امامت را در شرایط سختی امام پذیرفت اگر امام حسین علیه السلام دارای هفتا دو, دو تن یا کمی بیشتر از یاران فداکار بوده اما امام مشتباه به خاطر خیانت یارانش مجبور به صلح می شود به گونه ای که این یاران خیانتکار به معاویه نامه می نویسن که اگر دستور بدهی امام را دست بسته به تو تحویل می دهیم این اوج مظلومیت امام مشتبه علیه السلام و است و سرانجام توسط سمی که معاوی فرستاده بود به شهادت می رسد. این مصیبت جنکاه را و حضرت بقیه الله لازم روحی و ارواح و ناعلمین لتراب مقدمه الفداب شما پیروان و ارادتمندان آن امام همام سمیمانه و متوازن تسلیت ارز میکنن دومین مناسبه در آستانه عربیل حسینی قرار داریم هر ساله میلیونها نفر از ارادتمندان اهل بیت عموماً و ارادتمندان خامس آل عبا خصوصا با پای پیاده در مسیر عشق قدم می گذارند. امروز اربعین به نماد قدرت و به نماد عظمت شیعه در جهان تبدیل شده است واقعیت مطلب این است که ما باید از ظرفیت عربعین خیلی استفاده کنیم. در جهت و گسترش های اسلامی استفاده کنیم. در رابطه با عربین، در رابطه با وحدت امت اسلامی، بخصوص شیعه از آبون و همکاری در عربین جس و مسئله آخر تبلیغ معارف دین و قدرت نمایی و قدرت تاریخ سازی عربین. باید از این ظرفیت استفاده بشود. من یه توصیهی به مسئولان دارم دستن در کاران مسئله عربعین حالا که این مردم ما این همه با عشق با شور مسئله عربعین را دنبال میکنن پیاده روی را آغاز میکنن مسئولین انتظار دیگری ازشون هست البته من به سهم خودم اول باید تشکر کنم ولی گوشو و کنارگاهی شنیده می شود شاید شنیده های ما درست نباشد که حالا که مردم اقبال می کنند می گن چون مردم اقبال می کنند کرایه ها را ما دو برابر می کنیم این چه ادبیاتی است این چه تعبیری است شما باید خوشحال باشید این عشق شیعه این تبلور و تجلی عشق شیعه است هر در اختیار داریم در اختیار اینها قرار بدهیم کاری نکنیم که مایه دلسردی این عزیزان بشود من از تطاق نماز جمعه قوم هم باید تشکر کنم که میزبان زائران عربعین کسانی که از این مسیر عبور میکنند. و امروز هم جمعی از کشور خودمون و کشورهای مجاورمون در نماز جمعه حضور دارن یه توصیه هم میکنم به شما زائران اربعین سنت خوبی است اگر نهادینه بشود تو جامعه ما با اون سنت این است که هر کدوم به نیابت از یک شهید زیارت کنید چون این شهدا راه کربلا را برای ما باز کردند بنابراین تو مسیر رفتنتون بیاد شهدا باشید اینها با ایثار خونشان و جانشان این راه را برای ما باز کردن و امروز اربعین به برکت خون شهیدان ما انجام میکرد نکته دیگری که میخوام ارز بکنم این روزها سالگرد شهادت شهید مرحوم آیت الله آجا مصطفی خمینی بود اون شخصیتی بود که به تعبیر امام امید آینده اسلام بود در سن 48 سالگی تقریبا از دنیا رفته به فوت عادی به مرگ عادی یا به شهادت و مرگ ای که اون روزها مطرح شد چقدر آثار فقهی دارد آثار تفسیری دارد و دیگر آثار در زمینه علوم اسلامی دارد حقیقتاً سخن امام ما سخن عجیبی بود فرمود مرگ مصطفی از الطاف خطیهی الهی بود و اون رهلت و اون ارتحال جان تازه‌ای به نهزت ما داد ولذا شما بعد از اون نگاه کنید تا دستودوی بهمن سال 1357 این حرکت شتاب ادامه داشت تا انقلاب به پیروزی رسید می شود گفت از الطاف خفیه ی الهی بود که این عزیز از میان ما برود و نهزت ما جان تازهی بگیرد. سالگرد شهادت امار یاسر را داریم روز نهم ماه سفر صحابی پیغمبر یار و سرباز امیر المؤمنین. کسی که در همه جمعه ها حتی اون موقع که سن او از 90 سال گذشته است چون در سن نوت سه سالگی در جنگ سپین به شهادت رسیده خودش را به عنوان یک سرواز فداکار امیر قرار داده بود اون نهیب می به خواستی که امیر را به جایگاه امیر را درک نمی کردن. از بسیرت و آگاهی و شناخت لازم برخوردار بود یادی کنیم از شهید فهمیدمون محمد حسین فهمیده اون نوجوان 13 ساله‌ای که اقتدا کرد به شهدای کربلا و قدم در میدان جهاد و شهادت گذاشت اینشالله امیدواریم نوجوانان امروز جامعه ما به برکت تعلیم و تربیت معلمان و اولیا، به چنین درکی برسن و نیازهای جامعه امروز ما را هم در کنند یادی کنیم از شهید محراب شهید قاضی تبا تبایی رزوان خدا برو باد که توسط منافقین به شهادت رسید یه تحلیل کتایی راجب مسائل امروز جامعه مطرح کنم و به سخنم پایان بدم این روزها همه ما و شما شاهد عراجیف و اباطیل رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هستیم شاهد اقدامات نابخردانه دولت یاغی آمریکا هستیم اون چه رهبر عزیز انقلابمون در تای ساله های قبل فرمودند به واقعیت پیوست که با آمریکا نمی شود اعتماد کرد و روشن شد هم برای مسئولان ما هم برای تکتک مردم ما و هم برای دنیا رو روشن شد که امریکا قابل اعتماد نیست و خوشبختانه امروز همه همپیمانان امریکا و همه دنیا میگوین دولت امریکا در معادلات بین المللی دولت قابل اعتمادی نیست این برگ برنده برای ملت ما و مسئولان ماست یعنی اگر ما هیچ کاری نکرده باشیم همین که چهره آمریکا را تو دنیا مختزر و رسوا جلوه داده باشیم برای ملت ما کافیست یعنی رسواتر از گذشته رسوا بود و رسواتر از گذشته اینها از اول دنبال بودن انقلاب ما به پیروزی نرسد بعد که به پیروزی رسید مهار کنن انقلاب ما را نگذارن ما به هیچیک از اهداف انقلابمون دسترسی پیدا کنیم اینها میخواستن محاسبات مسئولان ما را تغییر بدن تا طبق میل اونها سخند بگن طبق میل اونها رفتار کنن اینها به واقعیت نپیوست امروز حرکت مجددی را علیه ما آغاز کردند سوال این است که این استبانیت برای چه؟ چرا کنگره بسیج می شود؟ مجلس سنا بسیج می شود؟ کابینه ترامپ بسیج می شود؟ ترامپ بسیج می شود؟ اینها حقیقتا به خاطر این است که احساس می کافی قافیه را باختند. قدرتشون در منطقه به تعبیر خودشون افول کرده است. قدرت جمهوری اسلامی امروز در منطقه در اوج است در منطقه حادثه ای اتفاق نمی افتد جز با اراده نظام مقدس جمهوری اسلامی اینها ما را تحریم کردن قدرت دفاعی ما چند برابر شد اینها ما را تحت فشار قرار دادن نفوظ ما چند برابر شد ایران امروز مهور مقاومت در منطقه است لذاحت دارن عصبانی باشن اگر این جمله را بگویم امروز آمریکا در دنیا تنها تر از همیشه است و این جز ازمت ملت ایران چیز دیگری نیست امروز داعش با شکست جدی مواجه شده اونا برای اینکه از قافل عقب نمانند، اعلام میکنن ما هم در سرکوب داعش نقش داریم شما که عاهده بودید داعش را بیخ گوش ملت ایران برای از بین بردن انقلاب قرار بدهید از دوردستها ها و نزدیک ها شروع کردید هدف نهایی اینجا بود و موفق نشدید یریدون لیطفیو نور به والله متم و مردم من به شما اطمینان میدم این انقلاب ما با امدادهای غیبی الهی پیروز شد با امدادهای غیبی الهی ادامه پیدا کرد و با امدادهای غیبی الهی به فضل پروردگار تا نابودی دشمنان به راهش ادامه خواهد بره معظم انقلاب به نخست وزیر اراق فرمودن گول آمریکایی ها نخورید لط نکنید اینها اگر قیدا کنند به عراق ضربه خواهند زد ما هم نباید غفلت کنیم ما هم باید به باشیم ممکن است جنگی را بر ما تحمیل نکنند ولی اهداف شومی را در سر میپرورانند پردرانند مردم عزیز مردم قوم که همیشه پای انقلاب بوده باید در همه سحنها در میدان بمانیم تا دشمن جرأت به خودش راه ندهد علیه ملت ما اقدام کند امروز کرکوک آزاد می شود با اراده کی آزاد می شود ارتش عراق هشت شعبی عراق اما اراده انقلاب ما ایران اسلامی ما اشاره شخصیت بزرگ ما اونا طراحی کرده بودند یکی از متفکرانشون گفته بود ما اقلیم کردستان را باید به گونه ای برنامه‌ریزی کنیم که ایران را با اقلیم کردستان به استقلال آن محاصره کنیم با این اراده لذا می در یه فرصت بسیار کم کرکوک آزاد می شود با درایت و تدبیر فرمانده شجاع جمهوری اسلامی محقق می شود و این نشانه عزت ملت ماست ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنه و قناه النار پروردگارا ما را بیاموز. به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما به امام راحل من روح و رزوان عنایت بفرما مدافعان حرم را پیروزشان بگردان توته های دشمنان را خونسا بگردان این ملت عزیز ما قهرمان ما همیشه در صحنه ما را برای حفظ اسلام حفظ قرآن حفظ نظام اسلامی حفظ مکتب اهل بیت زنده و پاینده بدان فروردگارا در فرج مولای من تعجیل فرما باران رحمتت را شامل حالمون بگردان این احسن الحدیث و ابلغ كتاب کتاب الله العزیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کالکوتر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ